laying off ما شما سر دموکراسی تاریخی نیست که ما با هم بحث بکنیم بود وقت رومان چیو بود بحث ما سر دموکراسی است که در عصر فیلی انقلاب فرانسه رو ایجاد کرد دموکراسی است که امروز در آمریکا تطبیق میشه دموکراسی است که امروز در کشورهای اروپایی تطبیق میشه بریم سرازی دموکراسی صحبت میکنیم اگر روز ممستریا 20 لیپسیگ 1800 میگن که اشتباهم بملا زیاد هست ملاه د جای ختم میره میشنه احساب کنه که بیس سند زیاد بلا ملاه هم دریوار باز فکر میکنه میگه همی بیس سپار میگه بیس سند مزاجی به خود میگه دریوار روزانه افیاد زیاد پیسه پیدا میکنه بیس سند بدلش نمیخنه پس به هم دریوار میتن میگه که بیس سند که مما داد ازافه بود اشتباهن بود وازی دریوار سنو ملاه خانده میکنه می اساسات دموکراسی است که قانون باید زمینی باشه اخلاق مطلق وجود نداره بلکه نسبی باید باشه و انسان باید مقدس باشه بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانان محترم دیروز یک همرای دو نفر از معصیدین که یکیشان شبیر احمد جان بود یکی شان سبحان الله نام داشت زیاد پیشنهاد کرده بودن میگفتن که به یه وقتها زیادتر مردم اختلاف دارن سر موضوع دموکراسی و اسلام نظر از بود که ما درباره اسلام و دموکراسی صحبت داشته باشیم درس امروز خود با اساس پیشنهاد ازی برادرایی که گفته بودن درباره اسلام و دموکراسی صحبت بکنیم امروز درس ما درباره اسلام و دموکراسی وقتی که صحبت میکنیم درباره اسلام و دموکراسی دو نقطه را اینجا در نظر میگیریم نکته اولش چرا دموکراسی آمد و قبل از نظام دموکراسی که در قربود کرام نظام بود این یکی ایناله بخش تاریخیش بحث میکنیم چرا که ما یک پریده یک اصل یک چیزی که در یک جای وجود داشته باشد تا وقتی که سیر تاریخی از را نفهمیم او را درست شناختا نمیتونیم. بناهن اول ما شما سره تاریخ از این بحث خاطر کردیم بعد از اینکه که سر موضوع تاریخی دموکراسی بحث کردیم به این وقت از ای که ما تو خدا بکنم که من من یک مسلمان دواری از این نظر میتون از دگاه بحثای اکادیمیک و تحقیقات درست و علمی است که آدم امو کسی که امید دموکراسی رو آورده اول از زبان از او بفهمیم که او چی میگن. ما گفت نمیزنیم که موقف اسلام ها. اول در بارش گفت نمیزنیم اول میخوایم که خود دموکراسی را منحیث یک مکتب که فعلا وجود داره من یک فکر که وجود داره من هست یک اندیشه میمیره از زبان خود غربی ها میفهمیم که غربی ها دموکراسی را چی میگن با در نقطه سه اومه می مقایسه میکنیم و نظریات میگیریم نظر یعنی اول بخش تاریخیش تا که منظم شوه بسما دومین سر ازی صحبت میکنیم که کسانی که خودشان دموکراسی را آوردن و ما دموکراسی رو چی قسم تعریف میکنن بنان من منایسی یک مسلمان میریم پیش یک غربی باسونج میگوریم که مقصد تو از دموکراسی چی تا ما بفامیم باز بعد ازی که فهمیدیم که دموکراسی یعنی چی باز بعد ازی میایم که علمای اسلام در ازی چی نظر دادن اگر دموکراسی چیزهای خوبی داشت خوب بود با سر چشم وقت زمانی بود که در روم برده ها بودن تمام قدرت که بود به دست اونمو یک طبقی بود که اونا طبقی زاده ها و ملک ها بودن اینجا یک کسی یک تیدار برآمدن گفتن که نیوالا برازه این برده ها هم یگان چیز حق داده شده اونا هم در بعض تصامیم دولتی نقش داشته باشند این به اون بود لکن بحث امروز ما شما سر از دموکراسی تاریخی نیست که ما به این سرازو بحث بکنیم در وقت روما چیگه بود بحث ما سره دموکراسی است که در عصر فیلی انقلاب فرانسه ایجاد کرد دموکراسی است که امروز در امریکا تطبیق می دموکراسی است که امروز در کشورهای اروپایی تطبیق به این سرازی دموکراسی صحبت میکنه. اگر چی بعضیا او قدیمشام میگن لکن موضوع قدیمش یک چیز بود لکن فعلا منایس یک فکر سیاسی یک مکتب سیاسی دموکراسی وجود داره در غرب چطور دموکراسی به میان آورد آمد تاریخش چه قسم بود تاریخی قسم بود که در اروپا پیش از اینکه دموکراسی بیายه چندین سال یا چندین قرن حکومتی بود به نام حکومت تیوکراسی حکومت تیوکراسی حکومتی بود که متشکل بود از کلیسا پادشاه ها در کلیسا پاپ و کشیش پاپ و کشیش قدرت داشتن و در نظام حکم یا در حکومت هم ها بودن سیستم از این حکومت از اینا چه قسم بود؟ سیستم حکومت از اینا ای قسم بود که پاپ و کشیش میگفتن مثل که آله هم میگن و این نظر که اونا میگن باید را فرق بکنیم با چیزی که اسلام گفته میشه اونا میگفتن پاپ و کشیش میگفتن که ما نماینده خدا در روی زمین هستیم. اونا میگفتن که ما نمایندهای خداوند در روی زمین هستیم، بناهن هر گفه که ما میزنیم هر گفه که ما میزنیم گفه های ما از طرف آسمان تایید میشن یعنی من پاپ وقتی که گف میزنم اگر گفتم که گاو سفید است شیرش سیاه است کس حق نداره که انتقاد بکنه چون ما نماینده خدا هستم و هر چیزی که خدا گفت ما گفتم خداوند رو تصدیخ میکنم مور فقط به نظر دا که خداوند فقط یک مور در دستش هست هر چیزی که پاب گفت و هر چیزی که کشیج گفت و مور کده میره و میگمی غلط گفت یا سهی گفت از این خاطر امروز هم اگر ما در کریسمس بریم امروز هم در کریسمس یه در کرسمسی که مسیحی ها میگیرن شراب میران و ایک نان میران و اینه توضیح میکنن و پاپ و کشش میگن که اینمی شراب تو بخو بو که خون ایسای مسیح هست و اینی ای نان بخو و بگو که ای گوشت ایسای مسیح هست امروز هم امی عقیده را دارن و کسایی که مسیحی هستن مجبور هستن اینمی گپای پاپ و هستن به اینمی شکل بپسیدن این پاپ و کشش میگفتن ما خلاص. از آسمان تا شدیم و نمایندهای خدا هستیم در مو وقت هم اینا جنت هم می فروختن هست که میاهی که جنت بخره بیایه برش جنت می فروش سه بسوه کارداری، داری در بسوه کار در دا کلیسا برش مور می شد تاپه که اینه برد توی جنت فروخته شد به توی پیسیت باز یک کسی پیدا شد رفت گفت ما باید می خواهم این بخرم یک میلیونر بود این وقت که راگوف گفت شما خود جنازه فروختین من میگم دوزخ گفت دوزخ چی میگفت خیر میخرم این راست چند از دوزخ گفت 10 میلیون خلاص مر کل دوزخ ازنده چند 10 میلیون بیا گفتن خلاص تجارت خوب ملذک ده میلیون دلار میته این دوزخ گرفت خرید و مرام گرفت پس پیشون امضا گرفت واقعا در مردم گفتو مرد من این دوزخ خریدم من دوزخ خود کس رو دیگه جنت نخری بیاید که مردی مجبور استی کجا بری مجبور استی در جنت بری این مرده که بایرامیش چل یه جنت فروشی پاپ و کشیش بند کرد اینال این نظر که پاپو و کشیش فرق داشت با اساسات اسلامی که علمای اسلام در اسلام ما که مثلا میم که ما مثلا علمای اسلام هستیم ما نه جنت سرکس فروخته میتونیم نه دوزخ فروخته میتونیم حتی خود ما از شما که ایتیاج استیم که آیا خداوند بر مرد جنت میبره یا نمیبره شاید شما از ما کده پیشتر جنت شاید ما گناهی ما زیادتر باشیم بناندر اسلام کس حق نداره که عالمش بخیزه بگوید که ما ولی بر یا جنت میتیم یا دوزخ میدونم بخاطر خاطر که جنت دادن و دوزخ دادن و جنت بردن و دوزخ بردن کس یه صلاحیت انسان نیست و صلاحیت خدای عزواجل است حتی از دیدگاه اسلام اگر یک نفر در جبه اسلام هم به شهادت میرسه ما حق نداریم بگوییم اینمی شهید صد بلکه باید خداوند مطالبه که ولا توزک و انفوس شما خدا تسکیه نکنین اگر یک کس شهید میشن بوین که ما ان الله دیگه ما همین گمان که خداوندی را در جمله شهدا قبول کنه میشه بسیاری کسایی را که ما فکر بکنیم که شهید است بیش خداوند مردار باشه و شهید نشده باشه ما از این خاطر ما تو حق نداریم که با صراحت به کس بگیم فلانی جنتی است و احادیثی درباره هست که حتی یک صحابی را می که بیچاره آدم جنتی است پیغمبر هم گفت چه دیگه فامیزنیم همین صحابی دوزخی است یک صحابی میگه ما مانند که دو قدر جهاد کرده، قدر زمامت کشیده، ای دو زخی هست. و پیغمبر صلی الله علیه خود گفت نمیزنه و ما یعنی قوانا این هو ایلا وحی یوها میگه بالاخره ما در آخر پیغمبر سلام رفت پشت سر سلم رف، پس سردمی سهابی رفتم، بالاخره که بسیار خوب جهاد کرد، لکن در آخرین مرحله ای, ای که زخم برداشت تحمیل نکت شام شیرمان سر زو خود انداق، شمشیر شیر داشتی کمی و خدا خود کرد و دو زخی شد. به در اسلام کس تحسیح کردن همید سیستم در مسیحیت بود که نظام تیوکراسی دینی گفته میشه. خب این نظام دینی کلیسهی که به نام تیوکراسی بود دیگه چی کار میکرد؟ این میگفت ما خیلی کماله داریم دوم کمالی که اونا داشتن میگفت اینی پاچاک است این پاچا را میگه ما تین کردیم به هر کسی که پاچا میشد بچه امپراتور بازنواسی امپراتور، اونا میگفتن که این امپراتور هم که هستن یا چون کلیسات تعین کردن بناه اختیار از اینا هم مقدس است از ازمان تعین شده بناه حق نداری که به زید پاچه هم گف بزنی خلاص به پاچه هم گف زده نمیتونی گف کافر است در طول تاریخ نظام تیوکراسی سی, و سی نفر از علماء و دانشمنده با شمول گالیله به خاطر ازی که مخالف نظریات پاپ‌ها و نخ مخالف نظریات کلیسا و تحکات علمی داشتن کشتن و به شهاده کشتن چرا به خاطر ازی که وقتی که علما میگفتن که زمین کروی شکل است یا بیضی شکل است یا زمین حرکت میکنن و ایچون نظرشان مخالف نظر کلیسا می بود کسایی که در کلیسا بودن نظریات از اینا را تایید نمی‌کردن و میگفتن که نیز زمین قوروی شکل نیست، هموار است. از این خاطر اینا را میگفتن که یا کافر شدند و اینا را میکشتن. این سیستم چند سال یا چند قرن که دوام کرد، بالاخره مردم خسته ساخت مردم بالاخره خسته شدند. از این خاطر یک تعداد از علمای برآمدند که اینا خواستن که اینمی دو سیستم اردوش باید از بین ببرن این علما مثل سارتر مثل جانجاکروسو مثل, مثل کارل مارکس یک تیدات نوی و ها آمدن و نظریات خودت دادن و نظریات ازیاد چی بود که گفتن باید ما پاپ و کشیش و کلیسا ها را باید اول از بین ببریم سرچلی پا کنن پاچه ها را هم باید از وین ببریم این هم از ببریم بناهن شعار انقلاب فرانسه چی بود؟ شعار انقلاب فرانسه بود که آخرین آخرین پادشاه را باروده های آخرین کشیش اعدام نمایید ایشه را میدادن بناه انگفتن اول باید کشیشه بکشیم از بین ببریم باز از روده های از دار جور کنیم و پادشاها را هم که تزمو امون روده های خفا کنیم و از بین ببریم بالاخره اینا در انقلاب فرانسه امتو کردن و پادشاها کشتن و کشیش ها را هم از بین بردن و در داخل کلیسا کت اصف های خود داخل شدن و کلیسه ها را به استبل یا اونمو گوخانه و اسخانه و خرخانه ببدل کردن این سیستم بنان گفتن چی میکنیم؟ گفت بنان به ایواز کلیسا و پاسچه و پاپ قانون خیلی کی بسازه؟ گفتن این چیزا چون مقدس نیست انسان مقدس است پس باید قانون کی بسازه؟ انسان بسازن و حکومت پادشایی از بین بره ایمدش حکومت چی به؟ جمهوری بیایی که ایره منظور از جمهوری جمهور مردم است که خود مردم و حکومت اختیار کن خودشان قانون بسازن خودشان تطبیق بکن برهن گفتن دیمکراسی تعریفشی است که حکومت مردم توسط مردم برای مردم حکم شعب لشعب علشعب. خب شد تاریخچه دموکراسی در اروپا میم که بیبینیم که قصهانی که میگم مثلا از دموکراسی صحبت میکنن بعد از بخش تاریخی خلاص کردیم میعنیم که خب حالی که شما دموکراسی میگین خیفر ما ببین که مقصد تانها از دموکراسی چی هست که ما او را بفامیم اگر چیز خوب است و سر چشم اسلام همیشه خوبی ها را میپسنده و اسلام همیشه چیزای خوبه تایید میکنه اگر بد است که ما بفامیم اتنه که در یک مشکل مبتلا شویم که انسان بگوید که من همیفامیدم و نفامیدن از دیدگاه قانون آزار پنداشتا نمیشن شما در پاکستان دریواری کردین وقتی که در کابل میین موتر را یک میگیرین سرچپا میدوانین تکر میکنی وقتی که تکر میکنی ترافیک ترا میبره بندی میکنه میگه والا من خب از پاکستان نیومدیم قانون کابلات نمیفهمیدیم از این خاطر من, من را بندی بندینا کلیم نه نه, نه, نه. در قانون آزار پنداشته نمیشه تو که نمیفهمید چرا نمیفهمید وقتی تمام روز خیزک زده میرفتی که دموکراسی و دموکراسی اول خب بفهم باز خیزک بزن اول بفهم باز اگر چیز خوب بود خیزک بزن تو نشه که یک وقت خیزک ناکی ناکی در سر بام بزنی بام بام از خسپوشک باشه در پایان میفتی در بین یک تندور در پای کباب شدن آدم ادفت باشه بام بکنن که همین ستونایش قابل از است که من سر بام خیزک بذارم یعنی تو دفتی سر خسپوشک خیزک میزنی میفتی در زیر خسپوشک هم تندور از خلپ در تندور رفتاری کباب شدید من خاطر اسلام میگم که نه بین مطالعه میکنیم بین ما بحث میکنیم خب ادالما پیش دیگه که درباره اسلام من لازم یک متخصص اسلام صحبت بکنم می فکر کنین که من یک استاد هستم در یکی از پانتونای اروپا براتون دموکراسی درس میدم ما رفتیم برایشان گفتیم خب مستر فلانی خان تو برای ما دموکراسی رو تشریح کن که ما بفهمیم ما نمییم که بعد از سیا خوب است ما گفتیم ما نمییم که بعد از سیا خوب است ما یک دفعه بفهمم میخوام به فامم، بازبازی که خوب فامیدم که مقصدون از دموکراسی چیز بازبازی او برات میگم که خوب است یا بد؟ ما نمیتونیم بگم که خوب است یا بد. گفت خب ولاد تخف موالی سلک بهیم خداوند مطالبه ایده چیزی که نداری توقف نکو. این سمع، والبسره، والفواده، کل اونا که کانه عنه مسئوله. چشم تو، گوش تو، قلب تو، کلش مسئولیت داره در مقابل خدای از دباجن. خب پروفسور یا الله؟ ما را درست بتوید دمکراسی را برای ما نشان بتوید ما فهم دمکراسی what is the meaning of democracy what is the definition of democracy تو برای ما تعریفشون بگو definitionشون بگو مانایشون بگو گفت که دموکراسی که اصلا دو بخشی داره خب کدام بخش داره؟ گفت یکی دموکراسی بخش فکری داره که به مانای فکر عقیده بخش فکری وقیده دیست و, و دیگهش بخش بخش است که در حکومت و در نظام تایید میشه درست است گفت در بخش فکری و عقیدتیش ما چند چیز داریم چند چیز داریم در فکری واقعا چند گفت اول در بخش فکریش بزرگترین مؤسسین دموکراسی گفتن که در نظام دموکراسی ما چیزی را به نام آسمانی نمیشناسیم دموکراسی امروز غربی چیز را به نام قانون آسمانی نمیپذیرد از نگاه فکر از این خاطر گفت ما قانون باید قانون زمینی باشن قانون چی باید باشه؟ زمینی باشه از این خاطر بزرگترین دشمنان دموکراسی نشته کردند که ما باید قانون از آسمان پایان بکنیم به زمین. یعنی چی؟ یعنی قانون باید اینمی انسان بسازم. ما چیزی رو به نام قانون آسمانی که در آسمان ساخته شده یا به نام ازی که خدا گفته یا به نامی ازی که ملائکه ها اور انتقال دادن آوردن یا به ای که پیغمبر هست ما چیزی را در سیستم دموکراسی خود نمیپذیریم. بنان اصل در دموکراسی چی انسان است. مقدس در دموکراسی چی است؟ انسان است. انسان قدسیت داره، انسان مقدس است، انسان خودش میتونه که برخود قانون بسازه، بناً ما چیز را به نام قانون آسمانی نمیپذیریم. و اگه انسانی که معتقد است به دموکراسی باید معتقد باشه که انسان خودش مقدس است. از این انسان مقدس حق داره که هر چیزی که بخواید بگه بکنن سر پیغمبر انتقاد بکنه حق داره بکنه چون خودش مقدس است. آه, چیزی که آسمان گفته مقدس نیست. کارتونای پیغمبر را بکشه آه, حق داره ایمانشو سفریج با دموکراسی زدهن. پیش ما پیغمبر مقدس نیست که پیش مقدس خودم انسان است وقتی که انسان آزاد است و میتونه ابراز نظر بکنه کارتونای پیغمبر را بکشه اوکی نو no پرابلم. تشکر. پروفسور ایتا اینال کسایی که در افغانستان می فریب نتر راست راست بگوید پسکنده پسکنده بگوید که مردم بفامد در افغانستان مشکلی که ورق صفید نشان میده زیرش کاربون ماندگی ورق سیاه اون ورق سیاه نشان نمیتر اون رو نمیگه اینال بسیاری مردم افغانستان 15 سال بود باز ورق صفیده اوستو میکن و سرزیگه او ولد زیر, زی زیر کاسه چی بود؟ کمانستان وقتی که آمدن گفتای ما برای کارگرها خدمت میکنیم برای دیگانها خدمت میکنیم من صاحب تخلصم از کارمل یعنی کار رو بسیار خوش دارم دیگه ایش صاحب تخلصم از مزدور یار یعنی من یار مزدورها هستم پنگ زالباد که قدرت گرفتن وقتی قدرت رو گرفتن بسیار سال از خداستان تیر شد مزدور یار رو مردم میگفتن که مزدور کش کارگر یار رو میگ دیقانیارا میگفتن دیقان کش چون کشتن نه دیقانا موندن دیقان به چرا که رفت دورکات نمازون در مسجد سیو غلط خان گفتن که تو اخوانیستی و تو بیمان هستی و تو چی هستی اشرار و زدن انقلاب هستی و فلان هستی و فلان هستی هست. یعنی کلا چی شدن امروز دموکراسی وقتی که برای مردم تعین میشن بین ما تحقیق بکنیم حداقل اینترنت هست کامپیوتر است کتابا هست, کتاب هست بخوانیم و حتی مسئولیت علمای ما هست که بخوانن یک نفر میگه فقط در رادیو شنیده از رادیو کس نه سیاست یاد میگیره نه علم یاد میگیره نه درس یاد میگیره خب گفتیم تشکر این تا نقطه اول چی بود که در نظام دموکراسی چیز را به نام آسمانی نمیشناسند هر چیزی که باشه چه چی باشه قانون از این خاطر میگه حکم مردم نه حکم خدا <تصفيق> نمیگه حکم پیغمبر خدا اوکی گفتیم دیگهش برما تشکل گفت دوم نمبر چیزی که است در دموکراسی در دموکراسی گفت میار مطلق باش با چونی جا کم است که اصلاحاتش دارد مثلا اخلاق اخلاق مطلق وجود نداره اخلاق مطلق یا میار مطلق چیمانک وجود نداره؟ میگه مثلا چیزی بنامه از این است که مثلا اینی حلال است و اینی حرام است به نهان پارلمان نمائنده مردم در هر کشور فیصله میکنه که چی حلال است و چی حرام اگه پارلمان گفت که شراب حلال است به حلال هست اگه گفت حرام است، حرام هست چون اینمی فیصله که پارلمان کرده اینمی اونا بگن ات مطلق چیزی که بر ما ببین که لباس داشتن خوب است یا به لباسی این وجود ندارن از این قاطر میگه تو میگه که لباس پوشیدن خوب است، من در اروپا میگم که به لباسی خوب است، تو میگه که هجاب خوب است، من میگم به حجابی خوب است. به هر هرکس هر کس حق داره که از مطابق عقیده خود چون خودش انسان است مطابق خواست خود فیصله بکنه بناهن نه تو مره مجبور بساز و نه مطابق ره مجبور میساز اگر تو میگی که لباس پوشیدن خوب چیده یا الانبر تو خوب است لباس اما سر هم انتقاد نگو که به لباسی بد چیز است چرا؟ میگه بخاطر ازی که به نام اخلاق <تصفيق> مطلق وجود نداره وقتی که اخلاق مطلق وجود نداره هر چیز نسبی است نسبی چی مانا؟ بگه نسبیش مانای چیز که هر کس هر چیزی را که خواسته باشه و هر دولت که هر چیزی رو تصمیم بگیره و فیصله بکنه مطابق خاص خودی از اینا باید باشه مثلا در بعضی از کشورهای آمریکا یک ولایتش تصمیم گرفتن که ما شما روز مادر رو خوش دارین روز معلم رو خوش دارین واقعی هم گرفتن ما روز همجنس بازار رو تجلیل میکنیم امی هفته گذاشته روز تجلیل همجنسگرای ها بودن مثلا مگه یک مرد از خوش داره که سرخی کالای زنانه پوش تر کالای مردانه خوشش میاد. حوره؟ کالای زنانه. دیگر تر چی زور میگه میکنه؟ نسبی هر چیز. لباس مردانه خوشش میاد. مرا لباس زنانه. خلاص من لباس زنانه پوشیدم، سرخیام کردم، سفیدام کردم. تو سرمای انتقاد نکن. با خاطر چی؟ با خاطر ازی که عمر کلش مطلق نیست، هر چیز نسبی است. هر کس هر چی خوش شما ت، میکنه. معنایشه چی گفتی اس یعنی معنایشه که نه حلال وجود داره و نه حرام وجود داره نه جایز وجود داره نه جایز وجود داره خود انسان میتونه که بر خود چیز رو حلال بگه خود پارلمان میتونه که حلال بر خود مردمش حلال بسازه خودش میتونه که حرام بسازه بنا عین میتونه مثلا پارلمان امریکا قوانین زنا خلاص قانون اکثریت مردم خوشدارن که زنا بکنن بنام کس حق نداره که برویش تزینان نکن این اساسات دموکراسی است که قانون باید زمینی باشه، اخلاق مطلق وجود نداره بلکه نسبی باید باشه و انسان باید مقدس باشه، مطلق انسان. هر انسان که از خودش مقدس است، خودش وقتی که مقدس است خودش ارزش داره خودی انسان میتونه که بر خود خوب و خراب و خدا خودش این بکنه کس اخ نداره که سریز انسان انتقاد بکنه که تو چرا سرلوچ گشتی سرپود گشتی چرا زنا کردی چرا شراب خودی چرا یک کار کردی چرا او کار کردی خلاص if I'm a young I can do everything وقتی که من جوان هستم من میتونم هرچی که دلم شد بکنم کس نمیتونه که مخالفت بکنم این شد خیلی ای جوان باید شراب نخورن زنا نکنن حلال از حراب از جایز است،, جایز است، گفت نه نه نه, نه. ما پیغمبر پیغمبر اما قدس نمیگیم ما خودم انسان اما قدس میگیم پیغمبر که گفت شراب حرام است، برای خود پیغمبر شراب حرام بود اما حالو چی کنم؟ حال دلش خب ای از نگاه چیست؟ گفت از نگاه اعتقادی فاهمیدیم سهیست شکر خیلی بیم از نگاه تطبیقی گفت دو اساس دیگه داریم. از اگاه تدبیقی یکی تدبیق حکومت که اصلا آزادی هاست بناهن از اگاه تدبیق باید دولتی که دمجا دمکراسی هست باید آزادی ها را صد فی صد در نظر داشته باش. و دومش انتخابات است. خب گفتیم در آزادی ها یعنی چی؟ گفت در آزادی ها منظور مایی هست که اول آزادی بیان آزادی اقتصاد بازار آزاد دیگه آزادی دین عقیده خو؟ خب؟ پروفیسور آزادی بیان یعنی چی؟ گفت آزادی بیان ما از اونم و عقیده که ما داریم نشعف میکنن که یعنی یک نفر که آزاد هست چیز مقدس نیست یک نفر میتونه بخیزه یک کتاب نوشته کنه ضد موسیٰ علیه السلام یک کتاب نوشته کنه ضد محمد صلی الله علیه السلام کارتون نوشته کنه کارتون ها را بکشه رسم بکشه سر پیغمبر رش خند بزنه سر خدا خند بزنه بنا نظام دموکراسی از این نفر دفاع میکنه رئیس مسلمان های کشور که کارتون کشیده بود دنمارک رئیس مسلمان های دنمارک گفت ما رفته پیش وزیر اطلاعات و کلتور دنمارک این نفر که در مجله کارتون های حضرت محمد سلام کشیده اخه با عقیده ما با ما را بسیار از عزت میکنه و پیغمبر ما را شخص مقدس است او ورچو که والا به که است خود شخص مقدس است و آزادی بیان داره خب که تا کی کارا کرده رفتن پیش صدرازا مش صدرازا هم گفت که ما معتقد به دموکراسی هستیم بنا وقتی از نگاه دموکراسی کس کدام پیغمبره یا کدام چون به چیز آسمانی مقدس نیست خود انسان آزادی داره و این از آزادی خود استفاده کرده اگر ما ایران سرش، سرزنش کنیم یا اینه بعد بگویم پس ما در عقیده خود ضرر رساندیم گفت که والا مسلمان ها در مقابل شما خیست اونا مثلا شما ده میلیون دلار نقص کردین گفت والا که صد میلیون دلار هم نقص کنیم ما از عقیده خود نمیگد اگه کل دنیا هم ما اقتصاد خود قطع بکنه در عبود اقتصادی رو ما چون عقیده ماست ما برای عقیده خود اگر ما ایره تغییر بتیم و این نفر را در زندان یک روزان داخل کنیم، مانا یه چیز که ما عقیده خود چی خراب کردیم و عقیده ما آزادی بیانست و همه قدس بودن این امی انسان بران پشما کس این امی که جونالیست که نمی کارتون را این ام است از این خاطر مازی تا آخر دفاع میکره This is our belief گفت این باور ماز ما هیچ چیز نمی درست. از نگاه اقتصاد گفت ما منظور ما گفت ما منظور ما از آزادی اقتصاد چیز گفت آزادی اقتصاد مانایش است که ما گفتیم که کدام میار مطلق وجود نداره که شما بگید سود حرام است در اقتصاد بازار آزاد سود حرام نیست وقتی که مردم خوش دارن و اقتصادان می که کشور خدا به یک دریق روشت بتر حق داره که از باقهای سودی استفاده کن ببخشیدی یک چیز دیگه مانده که آزادی باز جنس است آزادی جنس که یادم نره. گفت از این خاطر از اقتصاد استفاده کنه یک نفر میخواد که یک سایت انترنتی زنا را. باز بکنه و از این طریق بر خود پیسه آید بران دموکراسی برش مور میکنه که بکوی کاره می خواهد که یک چلتا دختر دخترا پیدا کنه و چلتا جوانه را پیدا بکنن یارک کلشانه برهنه برهنه در مسایت ها و در تلویزیون های خود برخصانه و از قیمت رخصی از و قیمت استفاده های جنسی از اینا پیسه پیدا بکنه بران این از نگاه دموکراسی کار بدر نکرده از این خاطر در حکومت های که دموکراسی است به شرکت ها جواز دادنش این سایت های اینترنتی که هست و این تلویزیون های فسق و فجایع فحشا ما هست ما شما 24 ساعت میبینیم یا از یا غیر قانونی کار نمیکنن از نگاه قانون خود دولت خود یا چیز دارن جواز دارن جوازه دوسیه که زیرش امضا مورد دموکراسی است. ای هست چرا گفت ما می اقتصاد ما آزاد باشه و وره باز اقتصاد باید جهانی باشه و موانع اقتصادی چیزی به نام اگر یک بانک در افغانستان 5% فیصد, فیصد یا 7% فیصد مفاد می مردم این بانکی ای کنی مفاده میتوه اینمی ششفیصد از نگاه شریعت اسلامی هیچ عالم مسلمانی که فروخته نشده که فروخته نشده اینه جواز نمید. چون آیات قرآن و احادیث اینمه که سود کس, کس که سود میخوره رو به حرب من الله یکت خدا در جنگ است اینه اسلام جزا نمید. اما ای که مثلا اما از نگاه اقتصاد بازار یا به با حساب آزادی اقتصادی دموکراسی، این بانک ها حق دانند که در یک کشوری که در اونجا دموکراسی است از او استفاده بکنند از نگاه دین گفت این چطور است؟ گفت در دموکراسی آزادی دین است که یک نفر میتونه که صبح یهودی باشه چاشت مسلمان باشه، دیگر مسیحی باشه، شواموندو باشه. دلش هر کس دلش. گוף هم آزادی ماست. در جنس گف گف جنس معنای است که آزادی جنسی است که هر کس خواست زنا بکنه، خواست هم جنس بازی بکنه. خاست که شادی مثل که ما شما در تلویزیون ها میبینیم که شادی ازدواج کنه و داروی سرک یا داماد شادی باشه عروس انسان باشه یا عروس شادی باشه داماد انسان باشه با مریض شادی ازدواج بکنه هر کس سگ ازدواج بکنه کس حق نداره که رو بیاد که تو چه روی کار کردی بنا کسایی که زناکار هستن و یا کسایی که همجنسگرایی میکنن یا در این بازارها و در این سرکها و سایت های اینترنتی و چنل های تلویزیونی با بسیار آزادی میتونن که در زیر قانون دموکراسی این کارا را بکنن خب تشکر ایشان فاطمه میلیم ها گف وقتی که میخوای دموکرات باشی نمی نظریات را باید چی کنی تدبیر بکنی در انتخابات چه قسم است در انتخابات از دیگاهی دموکراسی باید اعضای پارلمان و وزیر و صدرازم و رئیس جمهور و حکومت, حکومت و مثلا چیزی از باید رحمریت انتخاب شدن چی شرط است که فعال دی این... کدام شرط خاص نداره که تو دیندار باشی یا بدین باشی تو نمازخان باشی یا بینماز باشی تو مسلمان باشی یا کافر باشی خود مردم هر کس هر کس انتخاب کرد به اینجا اکثریت رای مهم است و وقتی که یک نفر 18 ساله شد میتونه در انتخابات بره انتخاب بکنه خب من میخوام برویم خودا در فروشی کاندید کنم و اونجا کلش کیسابوراست گفت خلاص تو هم خودا کاندید تو یا کیسابورا هم خدا کاندید میکنه اما با کی رایی بیشه؟ کل اگه رایی میده با کی؟ با کی با خلاص دموکراسی اینه میز که چون مردم کلش اکثریت کی سبر هستن بناهن کس حق نداره که اینا را رای خدا میتونه هر کسی که برد منطقه باید رای زیاد داشته باشی منطقه باید بتانی که مثلا تبلیغات بکنی و اینگه خلاص این شد سیستم انتخاباتش خب با که از پیش از این جناب عالی دموکراسی رو شناخت این فاهمیدیم بیاییم سر نقطه سیومیش که آل ما ببینیم که اسلام در ای چی میگن و نظر مسلمان ها چی هست در اینجا سه نظر هست نظر اولی صد فیصد فایید مسلمانایی هستند که اینمی دموکراسی رو 100 فیصد چی میکنند؟ تایید میکنند. قسم دوم کسایی هستند که میگم ما اینمی دموکراسی را 100 فیصد رأی میکنیم. چی میکنم 100 فیصد؟ رأی میکنم. و تعداد دوم دیگه هستند که میگم ما ایرا توجیه میکنیم یا تعویل و تشخیص میکنیم. خب توجیه میکنم. آمادهیم که از این ببینیم که نظریات کسایی که 100 فیصد تایید میکنن، اون چی نظر دادن؟ گفتن والا سر ما رفتیم در اروپا زندگی کردیم در امریکا زندگی کردیم حالا یک دانه پاسپورت افغانی در به چپم است یک دانه پاسپورت آمریکایی اروپایی در جیب راسم است بنا ما که اونجا زندگی کردیم در اونجا ایلمی قسم سیستم بود بنا انما دموکراسی در دا قبول دارم دل اجزاد دین بود دل اجزاد عقیده بود دل داد قرآن بود. خلاص تو که مسلمان است, برو به خانه در مزجدت مسلمانی قبول کن من رو چرا معنی میشی و من میگه که تو در مکراسی نباشم من اینمید قبول دارم دلم کافر هستم دلم مسلمان هستم با تو چی گفت من اینمید صد پیزت قبول میکنم خوش داری یا نداری اینمی هست در ایراق تانگا برده می شود افغانستان هم کتر بیه پینک دو خدا شعران بیتی القاید هستی خدا شعران بیتی طالب هستی خدا شعران بیتی پرخشایت در آسمان بالا میکن اوکی را می دیم آمدیم یک دیداد علمای دیگر گفت ساید دی ما صد دموکراسی دمکراسی را رد میکنیم. کنیم چرا رد می گفتم گفت ما اصلا این مردکه از تاریخش زد گفت تاریخ دموکراسی، این تاریخی که در اروپا بود این نظام های این تاریخ در کشورهای ما نبوده تا باله هیچ مسلمانی در هیچ مسجد کتی و خر خود داخل نشده و نمیشه و هیچ عالمه نبوده در کشورهای ما نظام دمکراسی هیچ وقت وجود نداشت. چون در زمان حضرت آمر وقتی که خیز گفت میزد گفت مردم بشنوین سلمان فارسی گفت نمیشنوون والله لن نسمع گفت چرا گفت کالایی که گفتی گفت چی که در کالایی دو دوزو متر شد نشد گفت, گفت، من رفتون که جل کنم نشد تو خوبونه بعد خوب لکس کالا جل کردی از مکره قد تا هم بلندست شانهای تا هم کنم نسمع او از ذات مر به بچه خود گفت بچه میاری کاکاییت جریان گفت که گ در مولست که تکه توضیح شده پدر بود شما هم بودین فلانی فلانی کلاگی بود در ماخرش نام ما هم بود گفت درست است ما خود ما بر تو هم توضیح کنید تو هم اشجار داشت گفتی امیر که پدر ما هست که نصف دنیا را رحبرش هست دلم برش سوخت کالا نداشت دلم برش سوخت باز ما دو دوبه تکه که ما برش بخشیدم باز ازو خاطر کالا نداره که بنجه باشه بر شما گپ بزنه باز اونم دو از خود آگیرم دو متر از منو مادرم براش پیدا نجور کرد پیشت حالا اومد که چه گپ بزن سلمان و فارسی بید خوب درستو سنولا گپ بزن مشنوین ناری تکبی الله ناری تکبی الله ناری تکبی الله الله اناله تزمان نم که ازت عمر به صفت رحبر مسلمان ها تعیین شد از طرف اون مردمی که اونجا بودن رو تاینش کردن گفو مردم اگه من مطابق قرآن و سنت عمل کردم مرا تایید کنین اگر مخالفت کردم مرا رد کنین مرا ره نمایی کنین از شمشیر خدا کشید با خدا مخالف قرآن و سنت که از شمشیر گردن رو تمه پرانین در اسلام نفر خاص کس نداره ای اتو نبود که کی نفرای حضرت عمر است، سی نفرای حضرت علی، نفرای ابوبکر صدیق است، سی نفرای فلان است. کلش نفرای خدا بودن. اما وقتی که مسلمان ها تقسیم شده به نفرای این نفرای گلاغا، این نفرای شیراغا، این نفرای قنداغا، این نفرای نوراغا، ای از جان آغا زد مسلمان ها گپشان چی شد؟ خراب شد. بلند گفتن ما تاریخی که تاریخ شهر کلیسا داشت که با هاره برعادت میداد ما این قسمی تاریخ در طول تاریخ خود نداشتیم برای ما نظام تویکراتی در اسلام نبوده که ایواز از ما دموکراسی رو بیاریم از نگاه کلمه گفت مثلا شما میگین که کلمه دموکراسی خداوند مطال گفته که هو سماکم المسلمین خداوند ما را گفته که شما رو چنام مانده؟ مسلمان ها نگفته دموکراسی بنانامی که خدا بر ما اختیار کرده ها ان دین عند الله الاسلام دین ما اسلام است و نام ما مسلمان ها اگر مثلا مثل اگ انسان هایی که پست هستند و زبان خدا خوش ندارن و فرهنگ خدا خوش ندارن می در سر ظروف فکرایی نوشتم که نا کارا سر رهنمای معاملات نوشتم که پراپرتی پس این سوال های بی شخصیت است بنابراین ما کلمه وارداتی که بنامه دمکراسی هست این کلمه است که کلمه غیر کلمه اسلامی است از جای دیگه آمده ما چی رو داریم که اتایمی کلمه رو استعمال کنیم چرا ظروف فکره نگوییم که باییم کراکری چرا نگویم که مثلا شربای مرخ چکن کارن سو <تصف> چی مانا خودم این جدنم در پیشیار از بیشخصیتی مردم هست اتا کسایی که دانجگاه و پرهانتون میگن امی هم انسانهای احمق و بیشعور جوانهای احمق و لوده هستن که استعمال میشن شخصیت ندارن هرکس که برشان دول زد میرخسن در غیر ازو اگر اینا بسیار زبان خود یاد دارن و خوش دارن یک چند تا دکشنری و پشتو و فارسی نشته بگن که ما بفاهمیم که مثلا در فارسی داری ما شما در کابل میدان هوایی میگه یعنی میدان که در هوا باشه در حال که میدان در نیست میدان خود از زمین است این گفتن ما از نگاه کلمات هم این قبول نداریم چون اگر چیز خوب هست در اسلام است پس ما میگیم اسلامی نظام خدا نمیگیم نظام دموکراسی میگیم نظام اسلامی از نگاه فکری و عقیده گفت خب این کلمه گفت ما قبول نکدیم رد شد. قانون زمینی از ما قانون زمینی رو با قبول نمی چون از ما قانون ما چی است قانون آسمانی است قانون سماوی قرآن عظیم شان خدای عزوجل از عرش بالای پیغمبر صلی الله علیه و اسلام توسط جبرائیل علیه السلام نازل اگر ما این قانون قبول کنیم خودکدی ما خراب میشه از دگاه اخلاق از ما اخلاق ما نسبی نسیم نیست اخلاق مطلق مروم است که دروغ حرام است زنا حرام است شراب کردن حرام است ریبا حرام است، سخنچینی حرام است، مسخره کردن مردم حرام است. بنان ما نمیتونیم اینو تغییر بدیم. و حلالم معلوم است. بنان اخلاق در اسلام که اخلاق ثابت است، مطلق است. و از قرآن و سنت تشریع شده. بنان ایتام نشد ما نمیتونیم بگیم که انسان مقدس است. بلکه انسان های مقدسی که مثل پیغمبرا بودند و معصوم بودن اما دیگر انسان ها کلشان که هستن انسانیست که نمیتونه قانون بسازه چون اگر قانون ساخت اگر تقسیم بندی کنیم هرکس به نفع خود کار میکنه مثلا وقتی که ملل متحد جور کردن پنج کشور عق... عبر قدرت کل حقی ویتو را به خود گرفتن اگر انسان میتونست قانون بسازه خب باید حقی ویتو را کل اگه میداشت با بایی کتگی خود حقی ویتو ندارم اما که یک ی چرا؟ با خاطر که زور داره و قانون ساختن و ما تو تا وقتی که آتوم نسازیم ما مجبور که یک که چنایی رکت اتوم خود پراندیم باز مجبور میشه که چی شما؟ حتی فیزیالی از سپورتماین های احمق که سپورتماین هستن خوب اندام داره خوب زور داره پنج نفر مثل ما باره کراته میکنن لیکن اقل اقلش خام هست اقدر احمق است. که یک کوریایی مسیحی بود پرست میاد کلافش ای این احمقه میبره و او جباز برش که پیش بود این قسمی سجده کن و او میره در کوریا و بود سجده کرده او از چالاکی کار گرفتن سپورت در دین خود داخل کردن دین خود در سپورت داخل کردن تو خلاص وقتی که رکسی بگو که ایره ما کاراتا میکرم السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم تو سجده کن و بسم الله الرحمن الرحیم میگم با مگه نه نه نه باید قسم کودا چیز کنی اما نفر که کراتر را, جو... را کشیده یا کلفور را کشیدن اون رو نفر بوده مجسمه رو جور کردن یعنی به شکل از اشکال تور از طریق سپورت هم بیدین میدارم بیدین میسازم و این زورش دور فیل عقلش عقل مرخ مرخ بسیار خوب است و مرخ مکلافیت نداره مرخ هم خوب است یک بالش زار داره یک بالش د اما ازی خود ازی هم خیلی چیزه میشه این ها رو دیدن ما این مشکلات رو داره خب این شد ای گفتیم از بین آزادی ها آزادی بیان در اسلام چوکات شدگیست که تو حق داری گپ بزنی لکن داخل چوکات گپ بزن حتی یک انسان توحین نکن و مثلاطنا از سگ میکشن کله از جود بوش میکشن میگی چیست میگه دموکراسی؟ اسلام میگه نی؟ ما حق نداریم که حتی یک شاگرد صفهالله هم توهین بکنیم؟ لا ازخرقاوم منقوم من آاسا یاکونو خیرا من شما سرکس مسخرگی و سرقاوایش و سر چیز روش نکنیم در اسلام میگه که؟ وقتی که اینج یک کس یک دانه رسم کشید گفتیم والله این رسم چه قدر خوبش است ما رسم توصیف نکردیم رسم توصیف کردیم پس انسان ها کلشان خداوند مصور است روز که تصویر میکشه انسان ها را جور کرده چه روی تو یک نفر سر قد فخشش سر بینی کوچکش سر گوش کرش سر رنگ سیاهش سر, سر کلش سر قلق خوردهش سر سیاهی سر قواریش سر چشماش چشماش خورد است یا کلان است یا تنگ است یا بزرگ است، یا ایرک سر دی کس انتقاد میکنه و خنده میکنه در حقیقت الا عیاذ بالله این سر رسوم خنده میکنه سر خدای عزوجل پس ما اجازه نمیده اسلام که ما هر رو مسخره گی اگر گپ میزنیم بر ما گفته شده که در جعبتان باید عادم مراعات را آد تقول لات قول و قول انظرنا. در قرآن حتی بازیکس میگویدند که ای پیغمبر رعینا ما را هم مراعات بگو دمی یک نوی از بیادبی بود که یهودان میخواستند از طریق همین استیلا به ادبی در مقابل پیغمبر اظهار بکنند. آیه قرآن نازل شده بود که اگر شما کسایی که مسلمان حرفتیس بگویید که انظرنا ای پیغمبر خدا ما نظر کو نگو ما را مراعات اسلام گفزدن زدن تایید میکنه هر کس و هر ناکس تایید نمیکنه اسلام میگه باید الفاظتان پاک باشه افت زبان بزرگترین صفت یک انسان مسلمان است بسیاری کسا هستند که خود خدا مسلمان میگه لیکن افت زبان نداره ولی ما مذاقیستم، ما شوقیستم، ما فلانیستم اما خبر نداره که در حدیث شریف میگه که یک نفر یک کلمه را میگه دو اونجا غذب خدای عز وجل است اگه اینا نمیزاره میگه برو ما مسخ کردم لکن میگه این میره واجب و نار میسازه واجب دوزخ میسازه دو دوزخ میره چرا این کلمه‌ای که تو گفتی توسط این کلمه تو فلانی نفر متاثر شد قلبا دل به دست آورد که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است هزار مرتبه به حج نرو دل یک مسلمان و مسکین به دست بیاد یک کس را به انجنت یک کس نتی یک کس را, را گفزش نگو حتی ما بسیاری وقت ها که بعضی از معسلین در سن فقط که مذاق کرده فیدیگه ایش گفته که والا ما خاطر مذاق قضی حتی به دین از اسلام متنفر شده و این نفر دیگر که میبینیم بسیار خوب نماز خوان، بسیار خوب دین دار اما اخلاق خود متوجه نیست شبیر جاد از معسلین پا انتون هست او برمک ورق آورد ورق آورد در گفت استاد امام لندن امام ام قصر شدو بیشتی؟ تو بیان یه بگو بر من؟ سرو جان بینجا قصر بکنی؟ شما بگو شده که اخلاق و داری و ایمان چقدر تاثیر میکنه؟ سلام علیکم یک امام بود در لندن یک مجید لندن نو مقرد شده بود وزیفه شم دشار بود هر روز به مشار میرفت باینه میلی باس میرا باینه موساد دا مقابل مقابله بشون ییرا روزه رمتریوار 20 رپ 20 سنت لیکن حسابون دا ملا زیاد است و ملا دا جو میره میش نه میکنه کی 20 سنت زیاد دادم ملا هم دریوار او فکر میکنم میکنه میگه همین 20 رپ نرمی 20 سنت ملا جی کنم کنه میگه دریوار روزا زیاد زیاد پیسے پیدا میکنه 20 نه پاداش نمیخره وقتی پوینچو دا 20 جی پس به م دریور که نی بست سنته کښې بود اشتباه بو بازی درېور سنو ماله خنده مې کنه و میږه با تو به ضد داده بخاطر اځی میگه نیمه تره می خواست امتحان که ملا امام کښه نه امدي تو استي ن م تو واقعا میخواست هستي یا می که در اسلام کنه ملا از موتر میشه مېشه بسیارته وضعیتش خراب مېشه ظف می میگه. خدا یک کم بود که من اسلام در بی تشکر خیلی یعنی یک دلار 100 سنت میشه و او کرای موتر مثلا 50 سنت است، نیم دلار. 20 سنت بسیار چیز عادیست مثل که یک نفر یک شانزاپول یا یک قران هست لیکن در یک قران اونو مردکت میخواهد تحقیق کنه و بفاهمه که تو عالم اسلام تو مسلمان تو جوان مسلمان باش که در می چی میکنه کنول و تابان دبرې میخوا اسلام تحقیق کنه و از اسلام با خبر شوم فقط خاص یک راه بر رشیدن به ی ازې خاطر به سری هستن که خدا خوب شیخ میگیره و خوب فامیده میگیره لکن اصلش کلماتش خطا میگیره یک نفر دلش از مسجد سیام میکنه یک نفر دلش از دین سیام میکنه یک نفر از عقیده دلش سیام میکنه از این خاطر دین مقدس اسلام آزادی بیان قایض کرده گفت که نه آزادی بیان؟ بله تو گرد زده میتونی آزاده رو بخیر سر من انتقاد کو بگو گستاد ولی اینی گفایی تو رو خبول ندارم اما تو چوکات عدب دیگر بطولیست که بخیر تو بگو گستاد او استادک تو سبر کن که من که تو یک انتقاد دارم خب. تو میشی استاد که من اینجا تاچم خب بیاستاش نمیشه دیگر من برادر محترم سروشگار شما بیاری اینجا گرد بزن نمیشه که مثلا شاگردم از مسئله پانتون است ما رو تخبیر و توحیم باید به یک تفل انسان احترام بکنم به یک تفل سن مکتب باید احترام بکنه. نه که فلانی فلانی اداره آزادی بینه آزادی اقتصاده به این شکل که اونا میگن ایره هم اسلام با یک چوکات اخلاقی گذاشته که درست از ما میخوایم پیسته فیدا کنم اما اسلام اگه پیسک پیدا میکنی از رای زنا از رای فروختن شراب از راه کار کردن پیش بشمان های ماش گرفتن از پیش سودخور سب شراب خود ده یک شراب خداوند 12 نفر پیغمبر سر ما یک لعنت خدا زارش آورد میشه کسی که انگورو خدا به شراب فور میپروجه کسی که معترفا در خدمت شراب فور می منه کسی که شرکت شراب فور جور میگنه کسی که بر مردم شراب وارد میکنه کسی که پیشه ش میتا کسی که در بانک پیشه ش میبره کسی که شراب مثلا توزیع میکنه بر مردم می رده میمانی خود رو می رن. کسی که می خوره کسی که می نوشانه که کلی تقریبا دوازده تایف مردم هست ده تایف مردم هست در سر شراب چی کنم لعنت خدا سرزمون نازمشتن پس ما حق نداریم که مثلا از دیگاه اقتصادی کم بگی اسلام خود قربانی است کم بگو کم بگو یک دلار دولار ماشه چرا باید داشته باشی اگر مسلمان هستی پنج هزار داشته باشی لکن با اخلاق با ایمان بسیاری کسی از آزادی بایان است شو تا به سازنده رو میاره و رقاسه رو و کوچه رو بند بگنم کل مردم نایمان منو چگه پس آزادی بیان است ای آزادی بیان نیست ای آزادی بیمانیست ای آزادی بی اخلاقیست آزادی بیتری بیگیست تو که انسان استی کار خوب باید چیز کنی؟ آزادی تا استفاده بزنید بنامین ای آزادی اقتصادی رو هم اسلام نمیفرد داره ای آزادی بیانه هم گفت نمیفرد آزادی دین عقیده رو که تو هر و هر کس که خیص هر کار حرکت رو پیره در اسلامی مردود است که هر کس به بخیصه و دین های باطل فاسد خودم مثل که امروز دشمن های اسلام مثل در بسری جای در بازی میتن تو بیا که ما برای تو کودکستان جور کردیم پرورشگاه جور کردیم باز او طفلک ها در پرورشگاه و والدینشان و قوم به غیرت هستن به خبر هستن از اولادش خبر نداره ار که بود وشتو که میبره پرستان شما میکن چی میخونی و اونا از او طریق او طفلک های خورد خورد چیزهای را یاد میتن که همون طفل افت ساله و ساله کافر میسازه آزادی چیست؟ در دین مقدس اسلام ازدواج است نکاح هست خواندن آیات است، احادیث است روابط مشروع اما این قسم که این های آزادی روی می بگه میگی رو هم قبول نمیکنن و در انتخابات اسلامی میگه وقتی که انتخابات در اسلام هست لکن اگر رحبر مسلمان ها تاین تا میشه و مردم برازو کی میکنن نمی‌کنن او رهبر دارای شرایطی است که او شرایط ایمانی است، اخلاقی است، حتی به درجه اجتهاد رسیده باشه، عالم باشه که تا اسلام را بر مردم درست توضیح و تشریح کرده بتونه، و علاوه بر اون از سابقه تقوا داشته باشه، با ایمان باشه. این شرایط بر اون شرایط انتخاباتی که به سیستم از جا هست، نمیگیرن. اسلام نمیپذیره. چون خاطر از که وقتی که در انتخابات یک کس بر یک کس شست خودمه چسبونه، نه که شست خود تو چسبانم، در هر ثوابی که تو کردی ما داخل دا هر ج... گناهی که کردی داخل شد. بنان با انتخابات خیلی انسان در گناه سری کساس نقینات کلکک خدای در جامعه چسبانن هر کس و هر ناکس سر نظر میده. وقتی نظر میده؟ وقتی کو هر کاری که زشت تر که کرد تو دا گناهش داخل هستی. دلوس سیو نامکت داخل است. از این خاطر اینی مردم گفتن که ما 100% اینو رد میکنیم. یک تیداد دیگر اومدن گفتن برادر عزیز ما ایراد توجہ میکنیم گفت چه قسم توجیه میکنیم گفت ما مثلا اگر یک نفر یک وقت ناسودین البانی یک عالم است اون میگم ما میگیم که وا گفتن که حکم مردم توسط مردم برای مردم گفت نه ما اوتو میکنیم که اینی حکم مردمش هست میکنیم اینی رو میگیم حکم خدا توسط مردم بالای مردم اینی میشه دموکراسی اسلامی حکم باید از خدا باشه و توسط مردم برای مردم این نظر کی گفت گفتیم خب این نظر از این وقتی که بردیم از با دموکراسی دمکراسی در کردیم شما یک گف گفت میشن گفتی از آخو از دموکراسی شرق هم شروع, شروع جور کنیم گفت ما دموکراسی رو جور کردیم که حکم خدا نباشه پس وقتی به حکم خدا داخل شد دموکراسی رو این از تعداب چی کردی؟ خراب کردی نشد گفتی قبول نمیشه گفتی خ ما یه کار نداریم خب یک یک تیزایی دیگر گفتن که نیست است که بعضی مردم فکر میکنن مردم عوام اصلا مسائل فکری و عقیدتی خبر ندارن تنها از تدبیتیش هست میگیم آزادی ها و انتخابات هست بله ما میگیم که مثلا آزادی ها در اسلام است، انتخابات هم در اسلام است. لکن در اسلام با کویود قیود با این شروع تین فلانی و فلانی و فلانی انتشایز ها رو ب از این خاطر گفت ما نمیخوایم که هر کسی که دموکراسی گفت کافر گفته شما بلکه ما میگیم که نه اون مسئله عقیدتی باید کاملا حس کنی و از آزادی هاش هم چیز گفتیم خوی یعنی, چی؟ یعنی چی خصم شد یعنی مانای شده میشه که مسئله این دمکراسی آدم بود نه. از این آدم گفتیم خب فکرش؟ شد کله چه بسی کن این سب کله شده خب از دیگاه شما میگه اگه توتی یک تو تعدید استش، یک تو تعدید استش، یک تو تامدید استش، یک تو تعدید استش، یک تو تعدید استش, استش. استش. اینه شد دمکراسی اسلامی ندازداره و نکله و نپایی مانای گب شد؟ اگه چی به ازیر الله مو کرده؟ دیگه اینال اینی شد نظریات کسایی که در دموکراسی نظر داشتن و اینه من گفتم اینال اگه کسی به سوال باکی مانده باشن میشه که مدرح بکنه دموکراسی که اونا میارن دین یعنی چی است؟ توحیدی که ما شما داریم توحید الوهیت است توحید ربوبیت است توحید اسما و است و توحید تکنین است که قانون میسازه توحید ربوبیت است توحید اسما و است و توحید تکنین است که قانون میسازه اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله گفتن گرفتن احبار و رهبان خدا مسیحی ها خدای خود گرفتن یک مسیحی آمد گفتن پیغمبر خدا ما قنار پرورش نمی... پرستش نمی کردیم گفتونا که حلال حرام می ساختن و حرام حلال می ساختن پیلوی که ما گفت خدایتان ساختی اینال در دموکراسی وقتی که قانون ساخته میشه و برای قانوندان اجازه می تکه بغیر از حکم خدا و حکم انسانت داخل کنه خودش دینش عقیدش چون اتخذ احبارهم و رهبانهم ارباب من الله عدی بن حاتم گفت پیغمبر خدا ما خب پاپ و کشیش خدا رهبرای خدا ما خب احبار عالم علما را میبینن رهبان هم گوشانش را گفت ما اون را پرستش نمی‌کردن گفت در حلال و در حرام که اونا باطن چیز حلال و حرام می‌کرد حرام و حلال می‌کرد میپذیره بده میگه خلاص وقتی که یک نفر اجازه داده که برد حلال و حیر ارامت تعین کنن اونمور در حق خدای خود خدا در صورتی که با اینمی عقیده باشن مولای صلی و بك خير الخلق كله من مولايا سلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيب بك خير الخلق كله مني. محمد سيد الكونين واتقال محمد